ظهور اسب شاخدار در زیر نور ستارگان و زمستان فرا رسید و بام های خانه ارل و سراسر جنگل و تبته ها را سپید پوش کرد و صحب زود که اوریون سگهایش را به دشت ها برد دنیا همچون کتابی بود که به تازگی توسط زندگی نوشته شده باشد چون سراسر داستان شب پیش در خطوط بلندی بر روی برف مانده بود روباه از اینجا گذشته بود و راسو از آنجا و گوزن سرخ در اینجا از جنگل خارج شده بود. ردپاها از تپه ها بالا می رفتند و از نظر پنهان می شدند. همان گونه که کردارهای زمامداران، سربازان، درباریان و سیاستمداران بر برگهای تاریخ پدیدار و ناپدید می شبند. حتی پرندگان هم اثرشان را بر برف گذاشته بودند، و چشم می توانست گام های های سه انگشتیشان را دنبال کند و ناگهان در مکانی که بلندترین پرهایشان با برف برخورد کرده بود در دو سوی ردپاها سه فرو رفتگی کوچک دیده میشد. و سپس ردپا پا کاملا محف می همچون فریاد مردمی گونه ای رؤیای آتشین بودند که تنها یک روز بر برگی از تاریخ بدیدار می شود و میگذرد. و هیچ اثر دیگری جز آن خطوط روی یک برگ بر جای نمیگذارد. و در میان تمامی این یادداشت‌های های باقی مانده از داستان شب، اوریون رد پای گوزن بزرگی را برمیگزید که از رفتنش چندان نگذشته بود و به همراه سگهایش تا جایی تعریبش میکرد که دیگر صدای شیپورش هم در ارل شنیده نمیشد. مردم ارل سرانجام سیاهی او و سگهایش را، در بازمانده سرخ غروب می دیدند که به هنگام بازگشت به خانه بر فراز تپهی ظاهر می شد. و اغلب پیش از درخشش نور ستارگان در میان یخریزهها به خانه نمی رسید. اغلب پوست گوزن سرخی بر شانهایش آویخته بود و شاخهای عظیم بر بالای سرش تکان می خوردند. در این هنگام یک روز اعضای شورای ارل به دور از چشم اوریان، در کارگاه نارل جمع شدند پس از غروب آفتاب هنگامی که همه از سر کار به خانه بازگشته بودند دیدار کردند و نارل با سنگینی جامی از شراب شهد در به هر کدام داد و هنگامی که همه آمدند در سکوت نشستند و سپس نارل سکوت را شکست و گفت آلوریک دیگر بر ایرل حکم رانی نمی کند و پسرش فرمان روای ایرل است و یک بار دیگر گفت که چگونه در گذشته آرزوی فرمانروایی جادویی برای حکمرانی بردره داشتند تا آن را مشهور کند و میپنداشتند که این فرمانروا اوریون است گفت و اکنون کجاست جادویی که آرزویش را داشتیم او که همچون همه پدرانش گواست چه کار میکند و از سوی سرزمین پریان هیچ اثری از جادو در او نیست و هیچ چیز تازه ای در کار نیست و اوت به دفاع از او برخواست. او به چابکی سگهایش هست و از سپید دم تا هنگام غروب شکار می و از دورترین تپه ها میگذرد و شاداب و بی آنکه خسته شده باشد باز می گردد. گوهیک گفت زیرا هنوز جوان است و همه همین را گفتند مگر تریل؟ و تریل برخواست و گفت او شیوه های جنگل و فرهنگ جانوران را بیش از آنچه انسان می تواند بیاموزد میداند گوهیک گفت این را تو به او آموختی هیچ جادویی در کار نیست نارل گفت هیچ کدام از اینها از سوی سرزمین پریان نیست و سوگوار برای از دست رفتن امید به جادویی که آرزویش را داشتند مدتی بحث کردند چون تاریخ هر در را دستکم یک بار لمس کرده بود، نام هر روستایی دستکم یکبار یک بار بر لبان انسانها آمده بود، تنها روستای ارل تا کنون نشده بود، و هیچ قرمی به هنگام گذر از دشتها آن را نشناخته بود، و اکنون تمامی نقشههایی که مدت قبل کشیده بودند، بر باد رفته می‌نمود. و هیچ امیدی جز در شرابی که از شهد شبدر گرفته شده بود، نمی‌دیدند. در خاموشی به این شراب روی آوردند شرابی گوارا بود و در اندک زمانی نقشه های جدیدی در اندیشه های درخشید، برنامه های جدید، ابزارهایی جدید و مذاکراتی مغرورانه در شورای ارل جریان یافت و میخواستند نقشه و سیاست جدیدی پیشگیرند، گیرند اما اوت از جا برخاست. در خانه ای سنگی در روستای ارل کتابی با جلد چرمی وجود داشت و حاوی تاریخچه روستای ارل بود و مردم در فصلهای ویژهی چگونگی همه چیز را در آن مینوشتند. خرد کشتگاران را در تعیین زمان درو، خرد شکارگران را در تغییب گوزنها و خرد پیشگویان که شیوه های زمین را می گفتند. اوت به دو جمله اشاره کرد. که از یکی از صفحات قدیمی این کتاب به یاد می‌آورد و بقیه محتوای آن صفحه درباره بیل زدن بود اوت این دو جمله را برای شورای ایرل که نشسته بودند و جامهای شرابشان جلویشان بر روی میز بود گفت آنگاه که کلاه بر سر اند و خود را در بافته های شبگون پیچیدند سرنوشت آنچرا که هیچ پیشگویی حدس نخواهد زد خواهد آورد و دیگر نقشه نگشیدند یا به خاطر آرامش حاصل از عظمت دیجهی که در آن خطوط یافته بودند و یا چون شراب نیرومندتر بود از هر آنچه که در کتابها نوشته بودند هرچه بود خاموش در کنار جامهای شرابشان نشستند و پیش از درخشش نور ستارگان در غرب از خانه نارل بیرون آمدند و به سوی خانه هاشان براه افتادند همانطور که میرفتند قرولوند می کردند که برای ایرل فرمانروای جادووی ندارند و از شوقشان به جادو می گفتند تا روستا و دره محبوبشان را از گمنامی نجات دهد. هر کدام که به خانهاش می رسید از دیگران جدا می شد و سرانجام فقط سه چهار نفر ماندند که در انتهای دهکده در زیر تپه ها زندگی می کردند و ناگهان در زیر نور ستارگان و اندک نوری که از غروب مانده بود، دیدند اسب شاخدار سپیدی خسته و گریزان و از پای افتاده از تپه ها گذشت. ایستادند و خیره شدند و چشمهاشان را مالیدند و با شگفتی ریشهاشان را کشیدند. و همچنان اسب شاخداری را دیدند که با فرسودگی میتاخت. سپس زوزه سگ های اوریون را شنیدند که نزدیک و نزدیک تر می شد. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نقطه ام ای نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o s t i b l o g f a c o m m e h r